اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعیل الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و عاله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت مرقوب دار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گزند و بلایی هم به دور باشد تاعت و عبادات شما هم مقبول درگاه خداوند متعال و امیدواریم که انشاءالله به لطف الهی بهترین تقدیرات هم در لیالی قدر برای شما تقدیر گردیده باشد اما بحث ما ما در فصل فصل با شما صحبت کردیم. یعنی بحث من در باب فصل و وصل بود در موضوع فصل با شما صحبت کنید و یه مقدار مطالبی رو برای شما بیان کردیم که نیاز بود به عنوان مقدمه شما اونها رو بگونید تا باب فصل و وصل رو ما برای شما بخوریم و فدمت شما گفتیم که فصل و وصل بحثش در جملات و در مفردات نیست و منظور از فصل جدا آمدن جملات به خاطر و منظور از وصل, وصل اونها با حرف عطف وابه اون هم به خاطر قرص و هر کدوم موازهی داره که ما موازه اونها رو برای شما خواهیم گفت. و گفتیم با توجه به اینکه که فصل نسبت به وصل اصله ما ابتداعاً بحث فصل رو با شما خواهیم دارم چون اصلی نیکن همه چیز از هم جداست. و بعد پیوند آرز میشه و گفتیم منظور از وصل هم عطف با واقع فقط چون بقیه حروف اگر عطف جمله به جمله بکنن مثل فاق و سنه معنی تو خود همون حرف عطفه یعنی ما معنای اون حرف عطف خواستیم که عطف کردیم بعد یه بحث کلی در مورد عطف کردیم گفتیم عطف جمله انشائیه به اخباریه و اخباریه به انشائیه جایز نیست حالا چه با فا باشه چه با فا باشه چه با صحبه باشه کلن عطف اخبار به به اخبار جایز نیست بعد به شما گفتیم اما جمله اسمیه و فعلیه عطف اونها به هم اشکالی نداره و این اگر باشند باشن اولاس فسیوهی و یومید دو دوتا فیدیه به هم قدر شد مباحث بحث فصل رو ما با هم شروع میکنیم حالا نگاه کنید توی قاعده درس قوائده ی درس رو بریم القواعد الوسلو عطف جملت علا اخرى یعنی علا جملت اخرى به واق فقط عطف جمله به جمله دیگر اونان به واق فقط و ترک و حاصل ملکل من انفصل و وصل موازی با. برای هر یک از انفصل و وصل است درست شد خاص و مخصوص خودش هر کدوم موازیی دارن مخصوص خودش گرچه تو تعریف اول وصلو گفت درست شد بعد فصلو ولی توی بیان که میرسه ابتدا وصل رو صحبت میکنه میگه یجب و الفصلو بین جملتين واجب فصل بیاریم بین دو جمله فی سلاست موازن در سه جا سه جا رو به عنوان مطلب اصلی ذکر میکنه بعد توی حاشیه هاشیه کتاب میگه دو جا رو هم دیگران گفتند ولی میشه اونها رو به این موضع سوام برگردون یعنی اون دو جایی که دیگران گفتند اونها رو ما جزء موازه سوم بدونیم که الان الف به چیم جزء موارد چیم درست شد چون پایین نگاه کنید حاشیه یک میگه زهر بعض المتأخرین دیدی از علمای معانی معاصر متأخر بعض المتأخرین من علمای معانی رفتند دیدی از علمای معانی متأخر اینا زیادت موضعین للفصل به این که دو موضع برای فصل اضافه کردن موضع 4 و 5 علل مواز علتی ذکرنا برای این موازه که ما ذکر کردیم را دو موضع اضافه کردیم پس شما چرا اون نیوردید میگه ولکن لها زین الموزه اینه ولی این دوتا موزه این در اگر آدم توش دقت کنه یمکن و غده ما علل موازه السادسه. میشه اونو از موارده موضع سومی که ذکر کردیم تونست و ما خواستیم که تعداد زیاد نباشه اون دوتا موضع رو هم شما دقت کنید میشه توی موضع سوم اون رو قرار داد حالا ما انشالله موقعی که بخونیم اون دو موضع رو هم برای شما توضیح میدیم اون دو موضع رو و مبحث رو براتون بیان میکنیم حالا انشاءالله تعالی شما میبینید که میشه تا یه حدی حالا بازور توی موزه سوم قرار داد ولی حالا اگه قرارم ندیم ما موضع چهارم و پنجمی رو هم که متأخرین گفتن برای شما میگیم و قاعده کار بر این بود که ایشون دیگه یا این هاشیه رو نمیزد یا اگر میخواست این حاشیه رو بزنه موضع سوم و چهارم رو میگفت بعد اون موضع چهارم و, و پنجم رو که گفته بود میگفتش که حالا ببینید این میشه تو موضع سوم جا بدین این که به این شکل مهم کلاس آموزشی آدم مطلبی رو بگه درست نیست خب حالا میگه وارد مواضع فصل بشیم وارد موضع فصل خوب موارد رو باز میکنید مثلا میدیم که موزه یک خوب موزه دو موزه ب بجیب بعد خود موزه علف چند تا زیر شاخه داره درست شد شما قشنگ اونها رو یادداشت می‌کنید میکنید که بتونید به ذهنتون بسپارید و با مثال مثالهاش رو که یاد میگیرید اون مطالب هم با ذهن شما آشناست با مثال اونها رو تو ذهن نگه میدارید بعد موارد متعدد رو توی عبارات و مطالب ببینید دیگه براتون ملکه میشه یاد میگیرید پس بتونید تقسیم بندی کنید یک موضع یک رو ما اسمش رو علف رو میذاریم کمال الاتصال پس یک یک از موازه فصل اسمش کمال اتصال یعنی به دلیل اینکه این, این دوتا جمله نهایت اتصال رو به هم دارن کمال اتصال رو به هم دارن دیگه نیاز به عطف نیست نیاز به عطف نیست یه عقلی هم هست دیگه اگر دوتا چیزی نهایت بقول خودمون نزدیکی رو نسبت به هم داشته باشن و کاملا متصل باشن دیگه نیاز به اینکه اونها رو به هم پیوند کنیم و آشنا کنیم وجود بد. خودشون متصل هستن اون هم تا از کمال اتصال به دلیل نهایت اتصال این دو جمله به هم دیگه ما از عطف کردن اونها به هم به طور کل مستقنی هستیم پس موضع اول شد عبارت از کمال اتصال این کجاست کمال اتصال یک ان یکون بینه هما اتحادون تام بین دوتا جمله اتحاد تام هست اون دوتا جمله با هم متحدند تام تمام خب اتحاد تام یک پارچگی بین این دوتا جمله هست یگانگی بین اینها ها هست اونم به طور کاملش این کجاها پیدا میشه پس کمال اتصال شد مورد اول حالا خود کمال اتصال سه بخش داره پس یک کمال اتصال کمال اتصال خودش سه بخش داره علف به جیم تو زه سپور الفش کدومه؟ یک ان یکون از وذالک تکون الجمله توکیدن الاولا یک کمال اتصال از این کمال اتصال خودش سه موضع داره. موضع اولش موضع اولش بین دوتا جمله ارتباط قوی هست و نوع ارتباط هم اینه جمله دوم تأکید برای جمله اول است جمله دوم تأکید برای جمله اول است خود این موردی که تأکید میگیم هست جمله دوم تأکیده برای جمله اول است. این خودش دو تا موزه داره. یک کدوم؟ یکش جمله دوم تأکید لفظی برای جمله اول است. جمله دوم تأکید لفظی برای جمله اول است، یعنی تکرار جمله اول. مثل فَإِنَّ فَإِنَّ مَالَ أُسْرِي فَإِنَّ مَالَ فَإِنَّ یوسرا بعد دوباره خدا میفرماید این نما علی اسری یوسرا این نما یوسرا دو تا جمله است این نما علی اسری یوسرا این نما علی یوسرا عطف هم نشده حالا چرا عطف نشدن؟ چون خود اولیه از خودش به خودش که نیاز به عطف میکیه کی؟ بارشو جمله دوم تأکید برای جمله اوله و به همین دلیل عطفی صورت بگید نگید تأکید لفظی آیه قرآن بوده یه فایل نمعه على عسره یسرا این نمعه دوتا تا برای این میگم که دامون شده یک یک گاهی ممکن است در لفظ تغییر کوچکی بین دو جمله بین دو جمله وجود داشته باشد تغییر کوچکی بین دو جمله وجود داشته شود مثله امهل هم امهل هم با حی امهل هم یعنی بهشون مهلت بده نه نه امهل کافرینه آیه رو بزارید محل کافرینه محل الگافرینه امهل هم رو ویدا. محل الگافرینه امهل هم آیه رو پیدا کردیم سوره تارق سوره ات تاره آیه هیزده هم فمحل الکافرین فمحل الکافرین امحل هم رو ویده فمحل الکافرین امحل یعنی چی؟ و محل کافرین یعنی پس مهلت بده به کافرین امحل هم رو یعنی مهلت بده بهشون یه مقدار رو یعنی امحالا قلیدن مفعول مطلق یعنی قلیدن درست شد؟ الان این دوتا جمله یکی دیگه یعنی به مهلت بده به کافرین پس اگر یه زمانی یه ذره توی مثلا به جای امهل اومد محل امهل با محل به یک منوست امهل کافرین کافرین با زمیر و یکیه امهل کافرین محل کافرین امهل و رو باید محل با امهل کافرین با خوم در هر حال جزء موارد تاکید نفسی حساب شد این تفسیر, تفسیر دوم در جایی که تاکید لفظی باشد گاه گاه جمله دوم با فا فا فایاتفه یا سما آورده می شود با فا یا سما آورده می شود و در این صورت که جمله دوم با فا یا سمه عطف گردیده است قصد و قرز از آوردن فا و سومه تأکید بیشتر تأکید بیشتر جمله دفعه است مثل کلا کلا صوفت علمون کلا صفه تعلمون سمکلا صفه تعلمون اگر مثل اون آیه فعل نعمل اسرای نعمل اسرای اسرا بود جمله اول و دوم عیناً تکرار شده بود و فاووسو نداشت یه تاکید لفظی ساده بود ولی الان که با سمم اومده یا اگه با فا می آمد جمله دوم تاکیدش بیشتر بود میگه مثل چی میمونه موقعی که فا و سمم نیست مثل این که من بگم بخور بخور الان بخور بخور دومیش فرق نمی کنه بخور بخور اما یه موقع بگم بخور بخور این دومی کن صدای من تأکیدش رو بیشتر کرد اینجا هم این سمه هم این کار میکنه وقتی میگه کلا صوفت علمون نه اینطور نیست میفهمید دوم گفته نه اینطور نیست میفهمید اینو با سمه هم درست شد. این رو هم عرض اولا یه تفسیری سومم بگم بنویسید که دیگه کامل کامل باش بعضی از علمای معانی مثالهای مثل تفسیر نوع یک را از موارد تأکید معنوی دانستند که از لحاظ که البته از لحاظ بحث موازع فصل فرقی نمی کن. تمام شد این مقداری که من ذکر کردم تا الان تو کتابتون نیست یعنی شما یاد گرفتید موارد اصلی بود بدونید بخونید یاد بگیرید که بفهمید چون چیزاش سختی نیست دوتو تو ستا مثاله و توضیح بیش از حد مند مورد دوم برای تأکید پس مورد اول شد تأکید لفظی مورد دوم تأکید معنوی اینو تو کتابتون گفت تأکید معنوی یعنی جمله دوم در معنا و مفهوم اینن تأکید برای جمله اول است. در معنا و مفهوم اینن تأکید برای جمله اول. است. مثل مثل مثال یک تو نگاه کنید مثال یک و قال ابو الطيب و قال ابو جناب آقای ابو الطيب متنبی گفته و مد ده رو ااممن رواتقص روات جمع راویه و مد رو و نیست روزگار مگر پار ای من, من بعضی است، مگر پارهی از راویان قصائد من راویان اشعار من قصائد من ومد دهروه الله من روات یعنی چی؟ چی مخواد بگید؟ میگه ببین منظور از دهر اینجا مردمان دهر روزگار منظور یعنی مردم روزگار روزگار نیست جز پارهی از راویان قصاید من یعنی آقای سیفت دوله شعر رو من میگم مردم این روزگار نیستند مگر ناقل شعر من یعنی هنر مال منه اگر یکی هم میبینی میاد شعری برا شما میخونه مدهی میکنه و قصیدهای میسراید این مال منه معنا و مفهوم و الفاظ از من گرفته اون فقط داره میخونه راویه پچی با گوش شاعر منم و بست هیچ کس دیگه نی مردم روزگار فقط راویان شعر من هست فهمیدید این تو مثل هم. مثل دوم چی میگه میگه اذا قلت و شعرم. هرگاه من شعری بسرایم، هرگاه من شعری بسرایم و شعری بگویم، اسبه اسبه یعنی سارم اس به دهرمون شد مردم روزگار میشوند خواننده شعر من شعر خوان میشن مردم روزگار شعر خان می میگردن یعنی شعر من میگیرن و میخونن منشد به کسی میگن که شعر کسی رو بخونه انشده یعنی شعر رو خوند شدنی فلانون شعرن یعنی فلانی برای من بسیده ای رو پس تو مسته دوم چی گفت؟ گفت موقعی که من شعری می مردم روزگار شعر خان میشن یعنی چی؟ یعنی شعر منو میگیرن آیا این عینا معنا و مفهومه نصره اول هست یا نیست همونه دیگه اینن معنا و مفهوم نصره بگید اوله که مردم روزگار نیستند مگر خواننده شعر من هر وقت من شعری رو میگم اونا شروع میکنند به خوندن اونها شروع میکنند به خواندن و شعر من رو بگید میخوان مردم روزگار بیانگر این میخواد باشه که مردم روزگار از خودشون هنری ندارن هر وقت من شعری رو میگم اونها شروع میکنند به خواندن شعر خوب این هم تأکید معنوی پس موضع اول از کمال اتصال چی شد تأکید خود تأکید چند قسم شد دو قسم تأکید لفظی تأکید معنوی تأکید لفظی رو توضیح دادیم تکرار خود لفظه تأکید معنوی گفتیم در تکرال لفظ نیست معنای جمله دوم اینن همون معنای جمله مثال هارم برا شما زدیم شما مثال هارم و مد و رو اامه روات قسادید یه نگفته و اضاق گفته اضقل تو شعرا سب و حد این جمله دوم اینن تاکید جمله قبلل پایین بگه یغول ان دهره یعنی ان اهلت دهره من جملت شعری من جملت روات شری وظال که الآن علسن الناس جمعاً ت تناقل و هوفی گل شعر منو همه درجم میرسه می خوه فکران از دهره انسان و شد و سایدی و یربی ها. انگار روزگار همشون راویان شعر من از شعر من رو میخونن و روایت میکنن از خودشون چیزی خود. این مورد اول از موازه کمال اتصال که جمله دوم تأکید است برای جمله مورد دوم از موارد کمال اتصال اول تید دوم جمله دوم بیان برای جمله اول باشد جمله دوم بیان برای جمله اول باشد یه تفسیره بنویسید منظور از بیان در اینجا تفسیر و توضیح است. و قصد عطف بیان نیست زیرا زیرا عطف بیان در جملات جاری نمیشه زیرا عطف بیان در جملات یاری نمیشد پس موضع دوم از مواظه کمال اتصال چیه جمله دوم بیان برای جمله اول باشه و منظور از بیان یعنی تفسیر و توضیح نه اطف بیان زیرا عطف بیان در جملات جاری نیست خوب اینم مثال بزنیم مثل مثال دوم همسلی که دار نباه قال عبول علا آقای معری گفته میگه اناس للناس لناس اناس و لناس منبدون و من منبدون و حاضرت یعنی مردم برا مردم اند مردم برای مردمند چه بادی با نشین باشد؟ و چه غیر بادی با نشین شهر نشید. چه روستایی چه شهری؟؟ مردم برای مردم؟ یعنی مردم در خدمت همگند؟ چه؟ در بادیه باشند چه در شهر تو شهر همه به هم خدمت میکنن و شهر اداره میشه تو بادیه هم که باشن همه به هم خدمت میکنن و بادیه اداره میشه بادیه نشین یعنی شادر میشه منبدون من و حاضر خوب اینو گفت یعنی انسان ها اجتماعی هلده. علف به به خدمت میکنه به به جیم خدمت میکنه جیم به دال خدمت میکنه بعد دوباره مثلا دال به علف خدمت میکنه همه در خدمت همه چه بدوی باشند چه هزنی اناسو لناسه من بدون و حاضرت تو مثل دوم توضیح می‌ده. اینکه همه در خدمت همان مردم برای مردمند یعنی چی؟ مردم برای مردمان اینو دوزیم میده میگه بعضان بعضان یعنی بعض هم خدمان خبرشه بعضی خادمند نه هم متعلق به خدم بعضی در خدمت بعض دیگرن یکی در خدمت دیگری است و این یش رو اگرچه خودشون ندونن اگرچه خودشون بگید ندونه این به اون خدمت الف به, به, به, به جیم جیم به دال دوباره بگید دال مثلا به زا زا میاد دوباره به علف اون نمیشنه سنند همتر دارن همه به هم ها هر کسی در خدمت کسی دیگه است اگرچه ندونه که این کسی که الان مثلا تخم مرغ تولید کرده کی بوده؟ اون تخم مرغ تولید کرده به دست تو رسیده، تا تو اصل تولید کردی به دست تو رسیده، اون یکی پشم تولید کرده به دست تو اون یکی رسیده، اون یکی مواد کشاورزی تولید کرده به دست تو اون یکی رسیده، اون یکی مواد صنعتی همه در خدمت فهم. اگر جامعه دیگه ندونه این اون کی درست کرد، کی رسوند، اون بعضن لبعضن و ان لم يشعروا خدم حالا جمله دوم توضیح و بیان برای جمله اول جمله اول گفت مردم برای مردمند چه در بادیه باشند چه در حاضره چه در روستا چه در شهر چه در بادیه چه در دریه فرقی نمیکنه مردم برای مردمند توی دومی توضیح داد که بعضیشون به بعض دیگه خدمت میکنند اگرچه خودشون خبر نداشت پایین هاشیه میگه بد و البادیتون ول حاضرتو ضد البادیه خب ضد بادیه چیه؟ بادیه یعنی چادر نشینا عشایر. اونایی که میرنی برای حاضره اونهایی که یه جا حاضرن. حرکت نمیکنن. خب میشه چیز ضد و هی المدن شهرها جز قازره هاست قرار روستاها ریف ها مدن میشه شهرهای بزرگ قرا میشه یکم کوچیکتر قریه ها ریف میشه روستا درستو و فلانن من اهل حاضرته گفته میشه فلانی اهل حاضر است یعنی کوچ نیست و فلانون من اهل بادیته، فلانی از اهل بادیه است. یعنی کوچنشینه، دامداره، از این ور، به اون به دنبال آب و علف حرکت. معنای اینه ان الناس لابد لهم من تعاون. مردم ناشارن به هم کمک کنند. فلا ی تحیع ان یستقل لفی هازه الحیات و شعون نفسی. بس ممکن نیست برای هیچ آدمی که تنها زندگی کنه در این دنیا آه، توی زندگی دنیایش تنها باشه و شعون خودش رو اداره کنه نه همه در خدمت هم دیگه تولید میکنن به دست اون یکی میرسید همینطوری زندگی خودشون رو اداره و از اون و این رو خدم. این هم شد بیان جمله دوم بیان جمله اول خوب معلومه وقتی تاکید بیانه عین خود اولیه دیگه دیگه پس بنابراین اتحاد تام دارن کمال اتصال دارن به هم عطف نمیشن چون عین خودش سوم بنلیس از موازه کمال اتصال جمله دوم بدل جمله دوم بدل برای جمله اول باشد. جمله دوم بدل برای جمله اول باشد. اینجا بدل منظور بدل اصطلاحیه چون بدل در جملات میاد همونطور که تأکیدم هم تأکید اصطلاحی بود که لفظی بود و معنی اما بیان منظور تفسیر و توضیح بود پس منظور از بدل همون بدلیه که توی نحو خوندید درست شد و بدل است جمله دوم بدل برای جمله اول بدل در اینجا سه نوعه جمله دوم بدل باشه سه نوع بدل داریم سه نوع یک بدل کل از کل دو بدل بعض از کل سه بدل احتمال بدل احتمال همین بدلایی که توی کتاب نخوندید الان داریم اینجا تو جملات بحث میکنیم بدل کل بدل بعض بدل احتمال سه بعدا هر قسمش جمله دوم به جمله اول عطف نمیشه مدل کل از این آیه رو بنویسید توی سوره یاسینه توی سوره یاسین سوره یاسین آیه بیست و بیست یا قومه قال یا قومه اتبعوا المرسلين اتبعوا المرسلين اتبعو من لا يسألكم عجرا من لا يسألكم عجرن و هم وهم و هم محتدون میگه یا آقای از راه دور اومد به مردم گفت مردم ای قوم من قاله یا قوم من اتبه از این رسولان خدا هر شنوایی داشته باشید تبعیت کنید بعد گفت تبعیت کنید از کسانی که از شما مزدی نمیخواند و هدایت شده خدایی هم هستند هم؟ حرف درست هم میزد. الان اون اتباع المرسلین مفعول قوله محبول قول قال یا قومه اتبه المرسلین این جمله دوم هم بدل احساس چون اتبه المرسلین المرسلین همون من از یسألکم عجرن و هم محتدونه کسانی که از شما موزی نمیخوان هدایت شده خدا هم هستن درست شد این میگن بدل بگید کل, از کل یعنی جمعه اتبه المرسلین رو بذاری توی کفه جمله جمعه اتبه او من لا یسالو و هم مهتدونم بذاری توی کفه ترازو یکی کل اون با کل این یکیست کل بدل کل از کل دوم، بدل بعض از کل، بدل بعض از کل مثل اینکه تو کتابتون گفته، آیه قرآن نگاه کنید یدبرالعمر، الامر الافلام داره، الافلام جنسه، یعنی تمام امور یودب رو هم فعل مزاره یعنی تدبیر میکنه همیشه تدبیر میکنه همه امور را خداوند همواره یودب برو لعنه. خدا همه کارها رو را راست میکنه بعد میگه یوفت سلول آیات آیاتش رو هم توضیح میده مفصلون آیات آیا تفصیل آیات توضیح دادن آیات جز ای از تدبیر امور نیست؟ خب تدبیر و امور یعنی همه کارها رو راست دوریست میکنه خب یکیش هم بگی توضیح و تفسیر آیات بیان آیاته پس انگاهی داری گفته خدا همه کارها رو رامیندازه تدبیر میکنه از جمله اونها تفصیل آیات توضیحه برای همین نفته نف و یو ای فسلال آیات عطف نکرده حالا چرا عطف نکرد یو ای فسلال آیات رو به یدبر دربه چرا عطف نکرد؟ یوف از سلول آیات نشد به جای یودبرالعمر میگیم به دلیلی که یوف از آیات بعضی از یودبرالعمر بدل بعض از کل بعد میفر لعلکم لعل ربکم به حالا چرا خدا همه کارا رو راستوریست میکنه همه رو برای خاطر اینکه شما باوره به پروردگارتون در قیامت داشته باشید باورد داشته باشید که خدایی هست و قیامتی هست و به لقای پروردگارتون یقین کنید لعن لکم به لقای رب بکن توقنون به لقای با تعلق به تورنون توقنون خبر لعن است. اینم بدل بعض از, از کنید که تفصیل آیات جز ای از بگو تدبیر امور اما بدل احتمال، بدل احتمال، حالا اگه تو نحف خونده باشید و انشالله هم در ذهن دارید اینه که وقتی مبدل من ذکر میشه وقتی مبدل من بگید ذکر میشه شوق شوق برای شنیدن بدل پیدا میشه یعنی کلام به گونه که میگن یتشوق و الى ذکر البدل شنونده اشتیاق پیدا میکنه که بدل بیاد چون یک کمی ادغام داره بدل بیاد توضیح بده مشتمل از نظر معنا بر بدل ایجاد توجه میکنه بر به این میگن بدل چی چی اشتمال مثال میزدم مثلا یه نفر میگه اعجبن الاستازو اعجبنی استازو یعنی این استاد منو شیفته کرده من از این استاد خوشم میگه اعجبنی استازو خب همه میبونن توش دارم دارم بفهمم خود چیه این استاد شما رو شیفته کرده خوشید میاد نوع حرف زدنش، مطالبش، تون صداش چی؟ وقتی میگه علم میگه اعجبنی ال استادو علمو. هو رو که میگه بهش میگم بدل اشتمال. آدم خیالش تخت میشه یا دیگه شوقش ریخته میشه. همه مطلب رو می‌گیره. اینو میگم بدل اشتمال. مثل که تو قرآن میگه یسعلونک عن الشهر حرام که انش شهر حرام یعنی پیغمبر هی میان از تو سوال میکنند یسعلون هی سوال میکنند سوال میکنند سوال میکنند از ماه حرام یسعلونک عن الشهر حرام خانم میموند چی چیه ماه حرام تو سوال میکنن اصلا عرض ازدواج تو ماه حرام جنگ تو ماه حرام معامله تو ماه حرام چی رو؟ خود خدا, خدا پشت یسعلونه که الشهر الحرام میگه قتالن فیه قتالن مجبوره بدن است از شهر الحرام یسعلونه عن الشهر شهر قتالن فیه تا میگه قتالن فیه آدم خیالش استفت میشه جنگ و جدال در ماه حرام را از تو سوال میکنن که جنگ و جدال در ماه حرام چه حکمی دارد؟ همین بدل احتمال رو که من در مفرد براتون مثال زدم مثل عجبانی از استاز و یا مثل یسعلونه که الشهر الحرام گتال فیه در مفرد مثال زدم و تعریف کردم ها؟ که وقتی مبدلانمه ذکر میشه یه تشفق و سامه لا ذکر البدل این تو جملات هم هست اما بدل اجتمال توی جمله من توی قرآن ندیدم که بخوام مثال بزنم این نیست این ما از شعر مثال بزنیم برگویده که شما توی کتابتون هم خیلی از همسلتون شعر شعر مثال بزنیم مثل این شر، اقوال لهو یادت شد، اقوال لهو ارحل اغول اقوال لهو ارحل لا توبی من نه لا توبی من نه اندنا و ایلا و ایلا فکن فسر فسر و الجهره و مسلمان و فکن فسر و الجهر مسلمان. ببینید میگه اعقول له من به این آقا میگم اعقول له ایران برو کوچ کن برو. این برو میگه یکی یعنی برو اگر اینجا وایسی خطر داره من دوست دارم میگم برو این برو ای ایجابیه مثبت یه موقع میگم عقول له هر حال میگم آقا برو این برو منفیه یعنی نمیخوام قیافتو ببینم نمیخوام چشمم تو چشم بیفته نمیخوام اینجا باشی برو منفیه این عقول له ارحل که گفت ما نمیدونیم منظورش کدومه. لذا شوق داریم که بفهمیم چیه. پشتش میگه لا توقی من نندنا. لا توقی من نندنا. لا توقی من با نون تاکید و لا نهیه اندنا مطلوب بود. لا توقی من یعنی جلو ما وای نستا پیش ما وای نستا این منفی نشون میده یعنی نمیخواییم اینجا وایسی از حضورت ناراحتیم برو دنبال کارت اون منفی بودن میده مثل چیه مثل که ما تو فارسی به یکی میگه برو برو برو شو این گومشویی که میاد همونه اما برامون توضیح میده که این برویی که من بهت گفتم از سر دوستی بهت نگفتم این جمله لا توگی من نه اندنا بدل بدل احتمال برای ارحل اقول له ارحل لا توگی من نه اندنا حالا چرا مش گفته بوده برو گم مسئلۀ دوم میگه میگه و الا فكن و جهر مسلمان و یعنی و الا اگر نمیری پس در ظاهر و باطن مسلمان باش این ظاهرا کسی بوده که ظاهرش مسلمان جلوه میکرده باطنش بدتر بوده غیبت میکرده تهمت میزد اکال میکرده و اگه میخوای پیش ما باشی در ظاهر و باطن مسلمان باش الان صاف و صاف ای باش برست باشو. اینم بدل اجتمال که لا توقی من نهندنها بدل اجتمال است از اینم یه تفسیره بنویسید برای این بحث بدل بنویسید این سه قسم بدل نوع بدل بعض از کل بسیار زیاد و بدل کل از کل کم و بدل اشتمال خیلی است و به همین خاطر و به همین خاطر شتاب فقط از نوع بدل بعض مثال آورده فقط از نوع بدل و از مثال ها حالا قاعده رو نگاه کنید دیگه یک رو خوندید یج بر فصل و فی سلاست موازه ان یکونه بینهما اتحاد تام و زالکه به ان الجملت و ثانیت و توقیدن که خودش گفتیم دو جوره تحکید لفظی تحکید معنوی توضیح دادیم او بیاناً لها که گفتیم منظور از بیان تفسیر و توضیحه و او بدلاً منها یا بدل باشه جمله دوم از اولی کلمه سه اسمیه بدل کل از کل بدل بعض از کل و بدل اشتمال که دو شده شد و یقال و هین از الا بین الجملتين کمال اتصال این موارد رو میگن بین دو تا جمله کمال بگید اتصال خب موزه اول خودم حالا بیاید توی بحث بحث نگاه کنید یقصد و علماء معانی به کلمت الوسخ منظورشون از علماء معانی منظورشون از کلمه الوسخ یقصد و علماء المعانی به کلمت الوسخ عطف جمله علا اخراب الواق عطف جمله رو بر جمله دیگه اونم به باب فقط مقصودشونه درست شد؟ پایین نگاه کنید هاشی داره همه توضیح دادیم همه هم فارسی گفتیم نوشتیم. میگه این نما هاشی دو این نما دسر علماء المعانی انایت هم فی هاز الباب علن البحث فی عطف جمل و به دول بقیه حروف العد منحصر کردن علماء معانی تمام توجهشون رو در این باب بر بحث عطف جملات ما گفتیم تو عطف مفردات ما این بحث رو نداریم و اونم با واقع فقط نه بقیه حروف عد چرا؟ گفتیم تو بقیه حروف عد معنا تو خود اون حرف عطف لعنها هیل عدات و لطی لأنها هي العدات التي تخفى الحاجة زیرا واو اون حرف عطفیه که ما احتیاجمون به اون مخفیه چون گفته واو خودش معنا نداره منگنه یعنی میکنه ما قبل و ما بعد. پس ما قبل و ما بعد باید یه بشه میشه اما بقیه حروف عطف مثل فا مثل سمه، معنا تو خود اون حرف عطفه دلست شد؟ و یحتاج العطف بها الى لطف فهم الفهم دقت في الادراك و احتیاج داره عطف با واو به دقت در فهم و درک به یک لطافت در فهم و یک دقت در ادراک نیاز داره چون خود واو معنا نداره پس ما قبل ما واقع اما فاوسون من خودشون معنا دارن همون معنای خودشون اگه میتونی قصدت بیار از این نها این ای زیرا این واف لا تدل الا علا مطلق الجمع و زیرا فا فقط دلالت میکنه که ما قبل و ما بعد میخواد با هم جمع کنه در حکم هم پرد مشترکشون کنه خودش نوزی است با هم میچسبونه چسبون خودش معنایی نداره اما غیروها اما غیر از واف من حروف العت از حروف عطف دیگه مثل فا و سمت فتوفید و معانی زاید اونا یه معانی اضافی خودشون دارن غیر از اینکه به هم میچسبنم اون معنای زاید اگر تو لازم داری بیار لازم نداری نداری فتوفید و معانی زاید کت ترتیب مد تقیب ترتیب با ترتیب بدون مهلت در فا و ترتیب مرد تراخی ترافی یعنی فاصله فیس امه و هنون مجرام و ما همین مغرف همین نیاز و من اجل زالک سهول ادراک و موازه ها مواطره هم. به خاطر همین که شما این معانی رو تو اونها هست و ما نیاز داریم میاریمشون نیاز نداریم نمیاریمشون یه پس معنی رو معلومه که کجا ما فا بیاریم کجا سهمه بیاریم آه؟ فقط واقعه که ما توش مشکل داریم و باید ما قبل و ما بعدو در نظر بگیریم لذا علمای معانی و رو شنو بردن رو واقعه و یخصد و علماء معانی به کلمت الوسخ عطف جملتن علا اخراد بلواقه فقط که قولن وردی مثل قوله های عبی وردی یو با و ده رو روزگار رو مورد خطاب قرار داده میگه علعبد و ریان ریان یعنی سیراب میگه العبد و ریان هم میشه رییا، امره ریا یعنی خانمی که تشنید سیرابه رجل و ریان یعنی آقایی که سیلا علی و ریان من نعما نعما یعنی نعمت تجود و به ها صفت نعمه میگه هرچی آدم عبد قلامان که اینها در جامعه جزء طبقه دو به حساب می آمدن میگه تمام قلامان دیرابند. شکمشون پره از نعمت هایی که تو جود کردی درست شد و و تمام آزادگان آدمایی که سرشون به تنشون میارده ملتحب و جگرشون داره احشا یعنی روده ها و جگر و مده و اینها ها شکم آنها اون ملتحبه یعنی شعلوره از تشنگی یعنی تشنه عله هر ملتهب الاحشاء من زعن زعن یعنی آتش جگرشون داره میسوزه از آتش آدمای آزاد. داشته میکرده میکردم حاکم زمان دو میگه آدمای سفده و عبد و غلام تو این حکومت تو به جاهایی رسیدند و تو اونها رو اینقدر بهشون دادی خوردن سیراب سیراغ اما آدم آزاده از تشنگی دارن تلق میشن جگرشون بیسوزد تشنگی ار ریان زد دو زمان زمان یعنی تشنه ار یعنی سیراغ نعمان یعنی تشنه الان دوتا جمله به هم شده ال ریان و ال غردو منفه و هر دو جمله اسمی هست هر دو خبری است و هم عطل شدار میگیم جوز موازه وست که خواهیم گفت مثلا جوز موازه دو همه شسته باشه و یقصدون بلفست و منظورشون از فست ترک هازل عطل که این عطل صورت نگیره عطل بابا که قول المحرلی مثل قول آقای عبالالایه میگه تطلبن نه تطلبند لا تطلبند به آلت نکه حاجتن کلمون بلیغه به غیر هزن مقزلون توش تشبیه زمنی قشنگی هست که توی فصل قبل تو بحث تشبیه خود میگه لا تنطلب الا است و نون تاکید طلب نکن نخواه به آنتن با هیچ آلت و وسیله با هیچ وسیله و اسبابی طلب نکن برای خودت حاجتی رو خواستی رو میگه اگه خواستی داری و آواطیش نزن با وسیله و نمیدونم با اسباب و مسببات بخوای به حاجتت برسی فایده نداره میگه چطور میگه فقط به خاطر این اینه شانس فاید باشه اسباب و مسببات و اینا رو بریز دور و تو شانس امر خارجی نداره مقول خودمون وجود خارجی نداره مهلا نداره شانس چیزی نیست ولی خب شعرا مردم عامیانه همه چی رو به شانس میبندن دیگه هر چیزی رو که اتفاق میافته این هم داره میگه اگه داری دنبال هیچی نر رو که بخوای اونو به دست بیاری با هیچ وسیله نمیشه رو به دست بیاری باید شانس باشه بعد میگه چرا دلیل میاره مثال یه نسبت یه چیزی اس گفت توی مسته اول که هیچ حاجت ما رو هیچ آلتی نمیتونه حاجت ما رو بنابرای میکنه براش دلیل آورد و شانسه که فقط این کار میکنه توش دلیل آورد که قلمال بلیق به غیر حزن مقزلان حز یعنی شانس مقزل یعنی دوک این چوبایی که دورش نخ میپیچند توی این باف چیزایی که امور ریسندگی و بافندگی هست اون چوخهایی که دورش نخ رو میپیچند تا نخ گره نخوره و باز بشه بیاد اونو بهش میگن دوک میگه اگر یک کسی مثلا فرض بفرمایید که بهترین نویسنده روزگار باشه منفلوتی باشه جاهز باشه آه. ولی شانس نداشت میگه کسی نه تنها نوشتش و نبخونه بلکه قلمش رو همه دستش میگیرن آ چی چیه بشه هستی تختختختین حالو می نویسیم بده بینیم اینه قلمتون قلمش رو میگیرن دورش نخ میپیچند با عنوان دوک استفاده میکن قلم ولو بلیق قلم آدم بلیق در حالی که شانس ندارد به غیر هز مقزلون قلم البلیغ مقتداست مقزل خبر این از نوع تشبیه بلیغه مثل مقزله مثل دوکه یعنی دوک استفاده میشه قلم رو میگیرن و دوکش میکنن مثل دوک ازش استفاده میکنن چرا چون این آدم بلیغ ها جاهزه اما شانس نداره چون شانس نداره قلمش باید به عنوان دوک ازش استفاده میشه پس همه چیز میگه به شانس بستگید الان این جمله دوم قلم البلیغه به غیره از زن مقزن و عطف نشده به جای لا تطلبن به آلتن لکه حاجتن از موازه فصل حالا از این موازه فصله از موارد کمال اتصال نیست کمال اتصال این بود که جمله دوم تأکید باشه برای جمله این نیست جمله دوم بیان باشه که این هم نیست. جمله دوم بدل باشه که این هم نیست. پس از اون مواردیه که خواهیم خوند. حاضر. میگه این رو فهمیدی فصل و وصل چیه؟ دو تا مثال برات زدیم. ول کلو من الفصل و الوصل ول کل من الفصل و الوصل برای هر یک از فصل وصل جایگاه هاییست الیها ها الهاجدون. حاجت ما به طرف اونها میکشه و یقتزی المقام مقام و مقام اقتضای اون دو داره و سنب به مباطن الفصل و ما مباطن فصل رو برا تو توضیح تهمل امثلتت تعرفت علی اولا. نگاه کن مثالهای گروه یک مثال مثالهای گروه یک شروع. تجد بین جملتی اول و سانیتی فی کل مثال تعلوفان تمام می‌بینی بین جمله اول و دوم در هر مثال یک تعالف و الفت تمام جمله اول و دوم با هم ارتباط تمام داره. فل جملت سانیت و, و فل مثال ال اوله و هیچ ازاقل تو شهرن از شده. جمله دوم که اذا قلد شعرا شعرن هست و هست لم تجه الا توکید هم لدولا نه مگر اینکه که جمله اوله اولا و یه جمله و اون جمعه اولم اینه و مد ده من ده روی اللام روبات غصایی از تا اینه واحد. چون معنای دوتا جمله یک و جمعه تو سانیه مثال فیلم سانی بعضن و این لمیش خدم این جمله ما جاعت الا لعیزاه لتوضیح لتفسیر الولا نه مگر مگره به اینکه توضیح و تفسیر کنه جمله اول که اون جمله اول میده ان و ناس من بدو و خاصه فهیا بیان اون تفسیر و توضیح ان ده من جمله تو سانیتو فرمثال سالس جز اون و از اون من معنه الولا از معنای جمله اول بعضی از اون بدل بعض دیگه لعن تفصیل آیاد زیرا تفسیل آیات بعض علمه تدبیر رومون قسمتی از تدبیر رومون فهیه بدل ها و این بدل از, از, از, از. بدل بعض از ولا شک که انکل و شکی نیست که تو دیدی ان جمله تسانیت مفصولتان جمله دوم جدا آمده عن فی کل مثال من الامثنه در هر یک از این مثالها جمله دوم کوتاه جدا اومده از جمله اول ولا سر لهذا الفصل سوا ما بینه هما و هیچ رازی برای این فصل نیست جز آنچه که بین اینها هست از تمام تعالف هیچ رازی نیست که چرا اینها فاصله با واو نشده بینشون چرا واف آورده نشده چرا عطف نشده چرا اینها فصل اومدن از هم جدا اومدن هیچ دلیلی وجود نداره جز اینکه اینها نهایت تعالف رو با هم دارن و کمال اتحاد کمال اتحاد جایی که نهایت اتحاد هست که دیگه نیازه به قول خودمون به وصل عرضی نیست این اتصال ذاتی دارم دیگه نیاز به اتصال با باحت نیست و لذا یقال و این نبیدم جملت اینه کمال اتصال پایین هاشیر نگاه کانشیه یک میگه نه انر جملت هنا اما هنها اما به معنی اولا یا جمله دوم به معنای جمله اوله جایی که مثلا بدل کل از کل جایی که تفسیره مم. جایی که تأکید حال لفظی یا معنوی اینا جمله دوم به معنای جمله اول او به منزلت الجزء منها یا جمله دوم به منزله جز برای جمله اول بدل بعض و بدل اتماعی درس ش و رأیت یک تزی ترکل العطف و این اقتضا میکنه ترک کن چرا چون تو عالم خارجم لعن شی لا یعتف نفسه نفسهی ول جز اولا یا اتفالا کلی. چون تو عالم خارج هیچ چیزی به خودش عطف نمیشه خودش خودشه دیگه نیاز به اینکه بیاد او رو به خودش بچسبونه نیست خودش خودشه یه نهایت هرکی خودش به خودش مثل روح جسم میبونه اینا به هم چسبیدن اصلا نیاز نمیده و یا بعضه بعض اون الان دست من به من متصله دیگه جز منه جز خودش قسمتی از کل نیاز به اتصال به او نیست پس تو این موازه یا جمله دوم عین جمله اوله کسی از خودش به خودش نیاز به رابط نداره یا بعض از اوس بعضم که باشه هیچ بعضی برای اتصال به کل نیاز به رابط نداره چون خودش جزی از پس اینجا کمال اتصال هست اتحاد و تام هست و بگید نیاز به عطف وجود ندارد خیلی کند دارم میگم که بتونید جمع کنید بنویسید داشته باشید یاد بگیرید تا آخر عمرتون هم اینها به دردتون مخورد یه چیز دیگه هم وجود نداره یعنی کامله پس بنابراین انشالله قدردان این شرایط باشید عمر خودتون رو تلف نکنید وقت خودتون ارزش عرضش شید و این مطالب هم مطالب ساده است به ذهن بسپرید مثال رو یاد بگیرید وقتی مثال ها رو یاد گرفتید مطالب هم به ذهنتون میمونه و همیشه انشالله پندید موفق و معید و منصور باشید انشالله در پناه خداوند موفق و پیروز و السلام عليكم و احمد الله و الله